حکایت یکی از پادشاهان آبدی را پرسید که ایالان داشت اوقات عزیز چگونه میگذرد. گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت فرمود تا وچه کفاف وی معین دارند و بار عیال از دل او برخیزد ای گرفتار و پای بند دیگر آسودگی مبند خیال غم فرزند و نان و جام و قوت باز بازتارد ز سیر در ملکوت همه روز اتفاق میسازم که به شب با خدای پردازم شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بام داد فرزنده؟